خودمون عهد این و عهد می کنیم که یاد حسین، نام حسین، راه حسین را از زندگی خودمان هرگز جدا نکنیم. همه ملت ما، همه کشور ما، همه شیعیان عالم، بلکه همه آزادگان در سرتاسر سر جهان یک چنین احساسی نسبت به حسین ابن علی علیه السلام دارند. روزه هم ده ده تو روزه ها ز در گونه او هم اما تا ک بیاو مهاس ارو از خونه. سلام بر دل سوختگان آشورا سلام بر سینه‌های تفتیده و عشق های جاری عصر آشورا هنگامه غربت هست باید چون مولای من امام زمان علیه السلام خون بگریم از زمن الله و عجورنا و عجور کنیم السلام على الأزائل المقتطات، السلام على المقتول البتين، السلام على المحامي بلا مؤين، السلام على الشيب الخضيب، السلام على الخد التريب، السلام على البدن السليب. سلام بر اعضای قطعه قطعه شده سلام بر آن کس که شاه رگش بریده شد سلام بر آن مدافع بیاور سلام بر آن محاسن به خون خذاب شده سلام بر آن خاک خاکاوده سلام بران آن بدن برهنه سلام بران دندان چوب خورده سلام بران سر به بالاتگی نیست یا یا خیمه از آی آقا سید و علیه السلام خوش اومدید. شکر میکنیم بر اینکه توفیق داد تا خدمتگذار شما باشیم و ازادار حضرت عبا عبدالله سینره سلام در عصر آشورا خب امروز هم در برنامه بخشای مختلفی رو تحبیمتون خواهیم کرد در خدمت بکارشوناس بزرگ بار مجترستان و المسلمین دکتر محمد رزا و هم رو جترستان و مستمین استاد لاجیوردی در برنامه حضوری خواهیم بود و بخش درس‌های از آشورا را هم از زبان استاد دهشیری خواهیم شدید در برنامه واسم تسلیت میگم به شما و سلام میکنم به حجت و سلام و مستمین دکتر محمد رضا جباری خیلی خوش آمدید از آداریاتون معقول باشید شلی. علیکم السلام و رحمت الله بسم الله الرحمن الرحیم محضر حضرت و همکاران گرامیتون و شرمندگان عزیز این برنامه عرض سلام و عرض تصدیت دارم اعظم الله و اجورنا به مصابنا بالحسین علیه السلام الله خداوند متعال در این روز مقرر کند همه ما رو جزء منتقمین خون عبدالله عليه السلام در رکاب ولی دم اون بزرگوار منتقم اصلی حضرت حجست سلام الله علیه و الله عزداری ها رو قبول کنیم بلوت بشم خیلی ممنون و از حضورتون با امیدوارم بحثی که امروز داریم درباره برای حوادث روز آشورا مورد توجه شنبندگان گرامی قرار بگیره. روز آشورا روز مصیبت و ازماست هم از بابت شهادت حضرت عبا عبدالله و سلام و همینطور یاران با وفاشون، صابیشون و فرزندانشون عتش از چشم اسقر خواب می برد. قمش رنگ از رخ محتاب می برد. بیابان را سراسر آب می برد. علی را تشنگی از تاب می برد. لا لا لا, لا به خوابی نور پیچمان پرپر به خوابی کنچی افسرده اسر به خواب آسوده در دامن خاک ندیده دامن پرمهر مادر بیانی چشیدید لای لای بادر اگه روز خوش ندید حالا تو قبرت خواهیدید لای لای لا لا لا لای به خواب و خواب راحت کن شب و روز که خاموش است صحرابار دیگر نه کودک شش ماهی من که اینجا خفته هم قاسم هم اکبر خدایا بشکند آن دست گلچین که کردین قنچه را نشکفته پرپر پر. چو لای ز دست زهره لای لا برو بر توسم کن که اینک سیراب شده ای، توسم کن علی جان که از داغت پدر می میرد، درود بر تو و خالیت، درود بر تو و حنجره گلگونت، درود بر تو و قنداغی خونینت، درود بر تو و دستان کوچکت که به عظمت آسمان است، مولا جان، ای باب الحوایج کربلا، از ما دستگیری کن که واماندگانی. لالا، لالا، مادر تو آف بدون بعد عباس، دیگر آب خراب است قیران عشق که در چشم رباب است رباب این لب یا این که چه کبیره گلم گریه نکن می‌گیره میگیره لالا چون اول فضل به عبروی خودش چین انداخ خیش را از دل گهباره به پایین انداخ پیش را از دل کهباره می ما تا نماند به زمین حرف عبا عبدالله گفتم بگن به سقا دیگه دارم شدید زودتر و وگرم بچه می افتد در بین کفست این در و آن در میزد. هی از این خیمه به آن خیمه زنی سر می زد آه بارو چه کسی حال تو را میفهمد فهمد از خر از تو خدا میفهمد نشون نده انقدر کلوتو با کن دو دسته کچونی تو بچه دعا کن دعا بکن یکم اموتا تیر حس کردی اگر سوی پدر می آید کار از دست تو از حلق تو بر می آید خطری بود اگر چاره خودت پیدا کن قد کش زنجره از سفر بابا از بغار از بغار علیش تورا لاچش لا ماهی عاشقار عاشقار عاشقار حال جن جهنان علارم ای ماه نافم هم تذیه تو تذیه خب آی جباری از حوادث امروز آغاز کنیم از بعد از نماز صبح چه گذشت در کربلا و چه اتفاقاتی افتاد تا شهادت ما بسم الله الرحمن الرحیم رو اهل بیت علیهم السلام در کربلا در حال عجیبی سپری کردن و در حالی که عبا عبدالله علیه السلام اتمام و کرد بر اصحابشون و یاران چنان که بر دشمن هم مکرر اتمام هجت شد و همطور که در برنامه دیروز هم عرض کردم امام علیه السلام با اصحابی مواجه بود وفادار و عارف دارای معرفت و بصیرت نسبت به امام علیه السلام و اینها واقعا دانسته بودند که به کجا آمدند و چه چیزی در انتظارشون هست که امام علیه السلام هم به اونها زد کرد و آینده رو بیان کرد و اینکه اگر کسی بخواد بهمان کشته خواهد شد در این حال شب گذشته در کنار امام علیه سلام همگی ماندند و کسی خارج نشد و صبح کردند شب آشورا رو در حالی که اون شب رو زمزمه های عاشقانه ای در خیمه‌ها برپا داشتند لهم دبی یون که دبی النحل روایت که مثل زمزمه هایی که از کندوهای زنبور اصل شنیده میشه اینها ناله نجوا و مناجات تا صبح یک گروهی که عزم رحیل دارن به سوی خداوند متعال و با شوق منتظرن ساعاتی دیگر به لقای خداوند برسن چه حالی دارن و صبح شد نماز آشقانهی رو پشت سر امامشون ولی امرشون امام عبا عبدالله علیه السلام اقامی کردن طبق نصوص مقاتل بعد از اقامه نماز صبح ابو عبدالله علیه سلام سپاهش را آراست آرایش سپاه داد عبا عبدالله سلام یعنی از آغاز صبح آشورا اینها عملا به دشمن اعلام کردند که از ما توقع بیعت توقع تسلیم نباید داشته باشید حسین کسی نیست که بخواد با مثل یزیدی بیعت بکند یا به پیشنهاد ابن زیاد گردن بنهد جوابی رو که برای یک شب گرفتند و فرد و سو, سو, سو عملاً, عملا حضرت نشون داد یعنی با آرایش دادن استفاه نشون داد دوست. که اگر بنای این باشد که شما چنان که خود حضرت فرمود که این ندعی ابن دعی قدرک زنی بین نتعی بین نتعی بین ثلت و لله بین از کنم که مرگ و بین تسلیم شدن و زلت پذیری منو مخیر کرده با این آرایش سپاه حضرت نشون داد که اون ذلت رو در ابوالفضل و یارانش نخواهند دید و حضرت مرگ رو ترجیح میده. بله. و خب این آرایشی که حضرت انجام دادن فرمانده نیروها رو ابوالفضل عباس علیه السلام قرار دادن. فرمانده در حقیقت اون کسی است که جلوداره و پرچم به دست بود داده میشه رسم جنگ ها این بوده که معمولا پرچم به دست شجاع ترین فرد داده میشد چون که در زمان پیامبر اکرم صلی اللہ علیه و علیه در جنگ های پیانبر اکرم در هر دو جبه این هست یعنی هم در جبه پیامبر اکرم پرچم بران بر نصوص متعدد به دست این رو المؤمنی سلام علیه بود که در روایاتی از پیامبر اکرم داریم که صاحب لوائی علی بن عبی طالب صاحب و پرچم من در دنیا و در قیامت علی ابن ابی طالب هست و همواره در جنگ ها صاحب لواء امیرالمومنین سلام الله علیه بود ممکن بود و رایت ها و پرچم های دست میمنه میسر امثال اینا اما پرچم اصلی دست امیرالمومنین بود به لحاظ شجاعت و جایگاه اون حضرت در جبهه باز به همین ترتیب پرچم رو بردن به دست اون قبائل یا اون افرادی که سابقه شجاعت داشتن و چون پرچم خیلی مهم بود یعنی در جنگ اگر پرچم سر نگم می شد به منزله فرو پاشیدن اون سپاه هست و فرو روحیه لذا پرچم و لبا به دست عبل فضل عباس علیه السلام داده شد و فرماندهی اصلی و عبل فضل السلام بود و میمنه به دست زهیر ابن قین داده شد میمنه سپاه و میسره فرماندهش به حبیب ابن مظاهر داده شد امام حسن بنابراین سپاه قلیل و اندکش رو آرایش داد در این سبخش معمولاً سپاه پنج بخش داشت اون سپاهی که به حال کثیر بود و کلان بود پنج بخش از که مقدم ساقه قلب میمنه میسره بخشی که مقدم بود به هر فرماندهی اصلی دست او بود در میمنه سپاه سمت راست سمت چپ قلب سپاه و ساقه پشت سپاهی پنج قسمت سپاه رو تقسیم میکردن و هر قسمت رو به فرماندهی میسپردن که به حال این نیروها بدانند از کیواد طبیعت بکنن و احیانا لازم شد تفرقی حاصل بشه و هر کدوم وذایفی داشته باشن مشخص باشه خب این آغاز حرکت عبا عبدالله علیه السلام در صبحگاه گاه آشوراز قسمت بعدی اقدامات عبا عبدالله علیه السلام بحث اتمام حجت هست بله. حضرتی مناجاتی داره با خداوند متعال که مناجات شنیدنی است. من الان فهرست رو سعی میکنم عرض خب رو کنم تا بله. آشور رو بعد حالا به تف یک نیایش و مناجات جانسوزی عبدالله علیه السلام با خدا متعال داره و بعد مرحله بعد اندرزها و اتمام است که امام علیه السلام و بعضی از یاران اون حضرت با سپاه دشمن داره. اونجا داریم که بعضی از یاران حضرت خواستند که اقدام بکنند به آغاز جنگ اما امام علیه السلام فرمود من آغازگر جنگ نخواهم بود. و رضا امام حتی لمکان تلاش داشتن که به صلاح آغازگره جنگ نباشن وقید بله. خب بعد از این مرحله اندرزها و نسائح مسئله توبه حر ابن یزید ریاحی رو داریم بله که او خودش رو به صلاح در دراحی بین دوزخ و بهش دید بدید. کار داره واقعا به جنگ میانجام به این تصور نمی کرد و خودش چند که از کلماتش برمیاد تصور نمیکرد که کار به جنگ بینجامه از همون آغاز هم در کلماتش هست که من این که از آغاز راه رو بر ابو عبدالله علیه السلام بستم برای این که اونها من رو متهم به نافرمانی نکنند و الا اگر می دانستم که کار به انجام می انجامد من چنان نمیکردم که راه رو بر حسین ببندم و الان دید که نه واقعا کار داره به جاهای سخت می انجامه و مقابله دو سپاه و توبه هر رو داریم بله در اونجا و بعد از هر توبه فرد دیگری داریم یزید بن زیاد بن مصاهر هست که اینم به بعد از هر توبه کرده حالا توضیحی ممکن بعد از بکنید بله و در مرحله بعد عمر سعد آغاز کند نبرد رو عمر سعد میاد کنم که بخصوص بعد از این که احساس خطر می کند از این نصائح ابی عبدالله علیه السلام و یارانش نسبت به سپاهش تلاش می کند که زودتر این جنگ انجام بشه و به پایان برسید ازا تیر رو به سمت سپاه ابی عبدالله علیه السلام پرتاب می کند و به سپاهش می که شاهد باشید که من اولین کسی بودم که تیر رو پرتاب کردم و این بنده زلیل دنیا برای اینکه دیگران پیش ابن زیاد شهادت بدن که این آغازگر جنگ بود و به سله و عطایاب و وعده های او برسه از که اولین تیر رو او پرتاب کرد و دارد که بعد از این مرحله دو غلامش رو به میدان فرستاد برای این آغاز جنگ با تیر ابن سعده و فرستادن دو غلامش به میدان که از این طرف هم علیه السلام عبدالله ابن امیر کلبی رو فرست که این نامش البته به اختلاف نقل شده گاهی وحب ازش یاد شده اسامی دیگر اما بنابر تحقیق عبدالله ابن امیر کلبیه که با همسرش باز این جریان جالبی داره آمدنش به کربلا و با همسرش آمد به کربلا و نهایتا خودش و همسرش هردو شهید شدند اما نه در این مرحله اینجا موفق شد دو غلام ابن سعد رو به درک واصل بکنه و برگرد روزمندانه نزد ابوالدلال سلام و بعد حمله دست جمعی از طرف سپاه ابن سعد آغاز شد امر ابن حجاج زبیدی که فرمانده بخش سپاه ابن سعد رو داشت او حمله رو انجام داد و عرض کنم که در این مرحله خب اصحاب ابی عبدالله علیه السلام هم مقاومت کردن با نیزه‌هاشون مقابل اون سپاه عرض کنم که استادمون اونها رو را عقب راندن و در مرحله بعد چند تا نبرد تن به تن داریم آه. که از جمله هر توی این مرحله یک نبرد کردم تا شهادتش باز در اینجا نیست هر آه. شهادتش دم ظهر و قبل از عرض کنم که نماز ابی عبدالله علیه السلام اینجا حمله میکنه. و کسی که هماورد تلبیده بود هر رو هر میره و باش می جنگ و رو به درک واصل میکنه و شهادت بریر ابن خدایر صحابی برجسته عبی عبدالله علیه السلام رو در این مرحله داریم و از کنم که همینطور برخی دیگر از خواب عبی عبدالله علیه در این حمله شهید شدند البته تو بعضی از نقل ها چیزی هست که شاید دقیق نباشه اما فیل جمله قابل پذیرش و اونی که گفتن در حمله دست جمعی اول تعداد زیادی از اصحاب حضرت گاهی تا 50 نفر گفتن اما این با شواهد سازگار نیست تعداد شهید شدن در اثر این حمله و بعد از این نبرد تن که بعد از اون حمله دست جمعی اول انجام گرفت و اینها حمله دست جمعی دومی رو اونها دارن باید به فرمانده همون امر ابن حجاج که تو این مرحله مسلم ابن عوسجه به شهادت میرسه که از میکنم بنابرای تحقیق اولین شهید در این قسمت نه در قسمت قبل گرچه خوب مشهور میگن در حمله اول دستی به شهادت رسیدن اما برخی از مبرخان تصریح کردن که اولین شهید از اصحاب ابی عبدالله علیسان در حمله دست جمعی دوم هست که مسلم ابن عوصجه دیدن در روی زمین افتاده و لحظات آخرش هست که ابو عبد سلام رفتن بالینش و از کنیم که در دامان آبی سلام به شهادت رسید و بعد از شهادت مسلم بن امتصه حمله دست جمعیه سوم به فرماندهی شمر یا شمر بعضی زبدهش رو که هم تو معروف شمر بنظر جوشان به فرماندهی او انجام گرفت که در این مرحله است که اون عبدالله الله ابن امیر و همسرش به شهادت می رسن امیره. از خودم که به میدان و به شهادت میرسه همسرش میاد بر بالینش و شمر قسیل قلب از خودم که دستور میده به یکی از افراد سپاه که بره و با عمودی بر سر این زن میکوبه و اون زن رو هم در کنار شوهرش بشهادت. به شهادت میرسونه و خب این مراحل سگانه حملات دست جمعی و حملات و های تن به تن از صبح تا ظهر انجام گرفت و الان می‌رسیم به هنگام زوال وقت نماز ظهر که ابوالسمامه ساعدی باعث یادآور میشه که وقت نماز به حضرت دلحقش دعا می‌کنه و اون نماز خوف رو به جا میارن روز آشورا عبا سلام نماز خوف به جا ورده که خب در فقه ما و در قرآن کریم منعکس شده پیان بر اکرم سالواله هم در بعضی از غذابات نماز خوف اقامه کرده و به این شکر که حال بخشی از سپاه مراقبت میکنند و بخشی هم به دنبال امام نیمی از نماز رو میکنن و امام کمی طول میده قیامه رکعت دوم رو با اونها نماز رو تمام می میرن به جای اونها و اونها میان با امام از رکعت دوم آغاز می کنن به این شکل و خب در اونجا باز ابو ثمامه پیستر امام نماز می خوند و زهیر ابن قین و سعید ابن عبدالله حنفی به خصوص از امام مراقبت می کنن در مقابل اون تیرها که در همونجا سعید ابن عبدالله به شهادت می رسه هر اصد تیرهای زیادی که بهش اصابت می کنه. و من تا قبل از نماز ظهر از نصوص برمیاد که شهادت دو بزرگوار رو داریم حبیب ابن مظاهر و حر ابن یزید ریاهی قبل از نماز از نصوص برمیاد که باز در همین همآوردهایی که طلبیده شده و به حال اینها رفتن به میدان و عرض کردم که این دو بزرگوار به شهادت میرسن و بعد بعد از نماز ظهر آشوراست است که تعداد دیگر از اصحاب از جمله زاهر ابن قینه بلافاصله بعد از نماز زهر که این در حینه از کنم که مراقبت از امام هنگام نماز مجروح شده بعد از نمازم به میدان میره و شجاعانه می جنگه و زهر به شهادت میرسه رسه نافع ابن هلال جملی به شهادت میرسه و بعضی دیگه مثل عبدالله و عبدالرحمن فرزندان عزره غفاری هست هنزبت ابن اصعد شبامیه و برخی دیگه مثل آبس ابن عبی شبیب شاکره همون که فرد بسیار شجاعی بود رفت به میدان و جنگید و او رو ابن سعد تعریف که حریف این نمیشه برسنگ بارانش کنید همین که سنگ باران کردند این به جای اینکه فرار بکند یا خود رو در محافظت قرار بده کلاه خود رو از سر برداشت و زره رو از تن کند و با این کار اعلام کرد که من نه از شمشیرهای شما گریزانم نه از سنگهای شما و به این شکل شجاعانه رفت و به شهادت رسید 16 ابن عبدالله هست و برخی دیگر از شهدا که بعد از نماز ظهر به شهادت رسیدن تا آخرین صحابی امام علیه السلام که هست هیچ کدام از اهل بیت رو داشتن به میدان بره و اینها جانشون رو فدای اهل بیت علیهم السلام اهل بیت ابوالنصر السلام کردن و بعد از شهادت این اصحاب هست که البته این که از قلم آخرین صحابی یکی دو نفر هستند که بعد عرض می‌کنم یکی اینها به اصطلاح مربوط به بعده اون تاها عمده اصحاب ابی عبدالله علیه السلام اکثر قریب به اتفاقشون شهادت رسیدن و بعد از اهل علیه علیهم السلام شروعش با علی اکبر هست که علی اکبر به میدان میره و به شهادت میرسه و این نشون میده که امام علیه السلام به هر حال همه چیز رو آورده و مقدم بر اهل مقدم بر فرزندان عقیل مقدم بر فرزندان عبدالله ابن جعفر و دیگر اهل بیت فرزندان برادر بزرگوارشون امام حسن علیه السلام علی اکبر رو به میدان می‌فرستند به ترتیب از اهل بیت ابوال عبدالله علیه السلام و از بنی هاشم میران و به شهادت میرسن بعد از تا آخرین فرد از بنی هاشم عباس ابوالفضل عباس علیه السلام هست که با شهادت ابوالفضل ابوالعبدالله علیه السلام تنها میمانه و یک که و تنها در مقابل این سفاه عظیم به خود حضرت از کنم که به میدان میره و حضرت و برحال اون دو نازدانه یا سه کودکی که حال بعد از این مرحله بعد از عباس سلام علیه به شهادت رسیدن علیه اسقر هست یا عبدالله رضی و از کنم که محمد ابن عبی سعد ابن عقیل اون تفلی که باز خیلی ناجوان مردانه تا اون لحظات آخر که امام حسن سلام در آستانه رفتن هست و رفت برای جنگ این طفل 5 شیست ساله آمد به از خیام بیرون و سراسیمه به اصلاح می که اونجا دارد که به اصلاح یکی از این عشقی آمد و او رو باشم شمشیرش دونیم کرد و بعد از اونم که شهادت عبدالله ابن حسن رو داریم در آغوش امام حسین علیه السلام در لحظات آخر یعنی سیار طفل مظلوم ابی عبدالله علیه السلام در قبل از شهادت اون حضرت رو و بعد از شهادت ام البنین فضل عباس علیه السلام داریم و بعد فاجعه عظیم شهادت عبا عبدالله علیه السلام در اسراش شد خیلی ممنون و متشکر. خب این بخشی که خدمت استاد جعفری بودیم استاد سعی کردن که خلاصه ای از کل بقایه رو در روزه رو بگیرند خیلی ممنون با چکردن شمای جباری تصورش هم سخته که از بعد از نماز صبح فکر میکنیم که آرایش سپاه حضرت در مقابل اون سپاه چگونه بوده هفته دو نفر قرار بوده در مقابل سی هزار نفر دیروس فرمودید درسته آرایش سپاه تاشت باشند واقعا سخت و غیر قابل تصور هست بریم طوفانمون باز میگه ایم که خدا بر تو باد، آرام باشه کوه صبر، این حسین توست که به میدان میرود برخیز او را صدا بزن اما اما چگونه با نام مادرتان زهرا و زینب و زینب تو میگویی محلا محلا یبن زهران قدری درنگ مهلتی ای فرزند زهرا امام ایستا چه سر قریبی است، نهفته در نام زهرا احترام حضور توست یا حرمت نام زهرا که حسین از اسب پیاده می شود و بووسگاه تو را دست یافتنی تر میخوام که جار سر جیز جا بگر سرت رو بالا دل گلو خوبی رمز الله حول ولا قوته الا بالله بله که امام بر زبان می آورد همین است که تو زینب می توانی از لحن و آهنگ کلام حسین بفهمی که او در چه حال و موقعیتی است او به تو فرمان داده است به ماندن در خیام اما دل تا به ماندن و قرار ندارد که می لا حول ولا قوت الا بالله. اما این بار آهنگ و لحن کلام امام آهنگ فرو افتادن خورشید بر زمین است و تو ناگهان از جا کند می و بر فراز تلی جای می گیری. تو اینجا چه باید بکنی زینه؟ مبادا مبادا که لب نفرین بگشایی و زمین و زمان را در هم بریزی ظهور قبر سیاه در آسمان صار آتش گرفتن گونهای خورشید بر پا شدن طوفان به رنگ صرخ فروباریدن خون خون کافیست صبور باش و بگذار شمر با دست و پای خونیم از قتلگاه بیرون بیاید. بگذار سر برادرت را با افتخار بر سر دست بلند کند و به دست خولی بسپارد بگذار تعیر بگوید که کار کار من بود. تو معموری به صبر زینه به صبر. همه اینها را بگذار اما حرف از فروریختن آسمان نزن که این مشیت خداست و تا خدا هست همه چیز زیباست و خدا جبار قهار است و سیعلم النزین زلم ایمون قلب این گم همه جمشید زد و همه یا ناله ی سوار گونشو کھولیہ بیا تا خمر آروم خونے ہر عزیز دلاب چہ دم دم بہ سر برا صدا میزد دل خوشی و انجام مادرم ادفر. رم خدا خود آسایه از درم جمبه کنم بابام رم بودم از درم گفتم دارم امروز که تو داریم گیری جانت به جهرم داره بیر و دست بلایت اشاره کرد به قلب خواهر آروم از این, از این مزید, مزید خواهر را آروم کرد تو داداش بری برد دست خدا پس ببما زیاد نشده فردیس ناشتار زیاد محل محل محل محل خب همچنان در خدمت ها جتورستان و مستمین اصطاد جباری هستیم و از وقایع امروز استادم گفت رجاء بر خدمتتون خواهش میکنم یکی از نکاتی که خیلی قابل توجه هست و بعد تأمل بشه درباره اون نکته شواهدی است که وجود داره بر اینکه اصحاب ابی عبدالله علیه السلام شوق عجیبی نسبت به شهادت داشتن نه به خود خودمون بزرگوار سلام الله علیه من زمینه که به این نکته اشاره میکنم و بعض شواهدش یک تحریفی رو هم سعی میکنم پاسخ بدم شاید. که خیلی منشأ پرسش شده این روز زیاد میشه تماس گرفته میشه یا بر محافل بطرحش. و اون اینکه که در برخی از مطور تاریخی وجود داره این عبارت چون دوچار شده منشای شده و اون اینکه از تواریخ مثل تاریخ تبری و انصاب الاشراف بلازوری الکامل ابن اسیر و امثال اینها این استفاده شده که امام حسین علیه السلام در روز آشورا یک خیمه رو دستور دادن که نصب بکنن و درون اون خیمه در زرفی به هر حال داروی تنظیف هر کنم که آماده بکنن و اصحاب با داروی تنظیف یا به نوره به اصلاح حط رو تنظیف بکنن این علتش نیست که تعبیل تبری این هست ما حضر الناس و اقبلو الالخسین الحسین به فستاتن فضور بر ثم امر به مسکن امام حسین دستور خیمه رو دادن برپا بشه بعد دستور دادن مسک مشک بانده. یا مشک آورده بشه فمیر سفی جفنت عظیمه او صحفه در یک زرفی این مشک قرار داده بشه قال ثم دخل الحسین ذالک الفستاد فتطلا به نوره این به نور در اصل به تور بوده به نور خونده شده به تور مراد زرفه ظرف مسین یا ظرف سنگی چیزی چیز دیگ جز همون که در آغاز این جمله طبره بیان میکنه و اون اینکه در یک ظرفی داخل این خیمه ظرف نسبتاً بزرگی مشک ریختند ماده خوشبو رو ریختند و بحل به هم زدن آماده کردند که این اصحاب برن خودشون رو خوشبو بکنن امام حسین علیه السلام این راوی میگه که امام حسین داخل شد و خود رو خوشبو کرد خارج شد بعد به دنبالش یک به یک اصحاب رفتند چون داشتن آماده می میشدن برای شهادت و این یکی از شواهد مهم شوق به اصلاح ابوالدهل سلام و اصحابش به شهادت هست که مثل دامادی که به هجده میره و به مجلس عروسی میره به مجلس جشن میره اینها با شوق به سمت این شهادت حرکت میکردن و خواستم این نکته رو بگم زیاد سوال میشه که با وجود نبود آب چطور اون روز مثلا به فکر چنین چیزهایی بودن از اون طرف میگیم آب در کربلا در خیام آب علی سلام نبود از اون طرف خب چنین آب رو صرف مثلا چنین کاری بکنن در حالی که این بخاطر اشتباهی است که در اون واژه و اون واژه رخ داده چون در قدیم سنت چاپ نبود استنساخ بود بله. واجه هم قریب به همین ان نوره با اتور با هم نزدیکه اولیتی بله. این نکتر باید قدردانی بکنیم مرهون دقت یکی از اساتید بزرگوار معاصر هستیم استاد محمد هادی یوسفی غربی شون در کتاب وقت و تف این دقت رو کردن و در مذاکرات شفاهی هم که باشون داشتیم در این کتاب ارزشمند به تاریخ قیام مختل جامعه سید و شهد و علی محققین تاریخ‌پژوه زیر نظر جناب استاد مهدی پیشپائی تنظیم شده مؤسسه امام خمینی چاپ کرده و به هر حال کاری ارزشمند و حدود ده سال صرف این کار شد در اونجا منعکس شده لازم کنم که این نکته و این تحقیقات این چنین این یک نکته است و نکته دیگر که باز در شواهد دال بر شوق اصحاب ابی عبدالله علیه السلام به شهادت هست گزارشیست راجبه بورایر ابن خویر این بورایر شخص عجیبیه نامش در چند جا از حوادث عصر تاسوعا شب را در از کنم که روز آشور آمده، این همون کسی است که رفت اذن گرفت از نهی ابوالدلال سلام و رفت به حضور و عمر سعد وارد خیمه عمر سعد شد بدون اینکه به این سلام بکنه نشست و عمر گفت مگر من رو مسلمان نمی دانی که به من سلام نکرد وارد شدی گفت من چگونه بر تو سلام بکنم در حالی که تو آب رو به روی خیام عبا عبدالله علیه سلام و فرزندانش احلایالش بستی و خودت و سفاهت به سر بهرمند از آب هستی و شروع کرد به نصیحت کردن ابن صد ابن صد لحظاتی سر به تفکر فرو برد و اما به سرا گفت که هرچند می دانم که حسین فرزند پیامبره و من در این کار در حق او جفا دارم میکنم اما چه کنم که نمیتونم دل بکنم از اون وعده ملک رایی که به من داده شده این برایر همونه و با معیوس میشه از ارشاد و را برمیگرده یا از خونم که باز جملاتی داره در اصل تاسعا در نصیحت سپاه دشمن امروز در روز آشورا این راوی نقم که این شخصی که نامش کو غلام عبدالرحمن ابن عبدالربه انصاریه یکی از اصحاب ابوبدر علیه السلام غلامش می‌گیدیدم که برایر با عبدالرحمن مزاح می‌کرد شوخی می‌کرد عبدالرحمن گفت دست بردار الان که وقت مزاح نیست از ما رو امروز داری مشاهده می‌کنی برایر گفت که به خدا قسم نزدیکان من همه میدانن که من نه در جوانی اهل شوخی بودم و نه در پیری ولی از آن در انتظار ماست خوشحالم و در پوست خود نمی‌گنجم به خدا قسم میان ما و حوریان بهشتی فاصله این نیست جز آن که این گروه با شمشیر بر ما بتازند و خب این نشون میده که به حال اینها به تبع ابوال عبدالله علیه السلام معرفت لازم رو بصیرت رو کسب کرده بودن هیچگاه نباید تصور ما نسبت به این هفتاد و دوتن تصور کسانی باشد که اینها دیدن چون حسین سلام سلامالالی تنهاست یک احساسات و عباطفی بهشون غالب شد و آمدن در رکاب حضرت همه با بصیرت آمدن همه با معرفت آمدن همه شناختن و میدانستن چه میکنن معال و نتیجه کار خودشون می دانستن به علم و یقین می که نتیجه کارشان بهشت است در جوار عبی عبدالله علیه السلام بودن و از حضرت جدا نشدن معال کارشون بهشته در شبه این جمله رو وقتی دقت بکنیم که سید ابن عبدالله حنفی میگه اگر هفتاد بار کشته شدم و زنده شدم دست است و بر نمیدارم باز در رکابت خواهم جنگید بالاتر از اون زهیر ابن قین میگه اگر هزار بار من رو به شهادت برسونن و خاکسترم رو به باد بدن مجدد زنده بشم باز دست است و برنمی نشون میده که اینها با معرفت تمام نسبت به عبا علیه سلام و حقانیت حضرت و بطلان طرف مقابل ملحق به حضرت شده بودن و طبیعتا وقتی که انسان خودش رو در کنار حق محض میبینه و با اون لحظات قرب الهی فاصله نیمه جز یک جنگیدن و شهادت رسیدن طبیعی است که چنین حالی رو داشته باشه و ان چنین با شوق به استقبال شهادت بره بر حال این نکته است که امروز باید خیلی ما بهش توجه داشته باشیم که مسیرمون رو آیا برگزیده ایم همچون مسیر این شهدا یقین نسبت به درستی مسیرمون داریم و اون جزئیات حرکاتی که در مسیرمون انجام میدیم که اگر این باشه با اطمینان خاطر با سرور قلب این حرکت رو در کنار کاروان ابواللالی سلام و در رکاب حضرت جوجه سلام الله علیه بعد پی بگیریم و حرکت انشاند. کنیم با استقامت در مسیر و از که هیچگاه از سختی‌هاش مایوس نشید ان شاء های جباری بالا از شوق شهادت در اصحاب گفتید من میخوام از شوق شهادت در فرزندان امام حسین سلام هم بگید که بله اشاره کردم در بخش قبل که یکی از شواهد بسیار خوب برای این مسئله علی اکبر سلام الله علیه و از مهمترین دلایل تاریخی برای اثبات این نکته اینکه او در مقدم و پیش قراول هست در رأس بنی هاشم هست که رفتن و به شهادت رسیدن از این کنار راهی عبداللاله سلام علی اکبر هست و به اصطلاح اظهار آمادگی کرد و ابا عبداللاله سلام هیچ مقاومتی نکرد در مقابل درخواست علی اکبر سلام که عرب... در مقابل خیلی اموراتنی بله در حالی که در حال این رو در ارتباط با فرزندان امام حسن علی سلام گاهی حضرت مقاومت داره مثل قاسم ابن الحسن اما نسبت به علی اکبر مقاومت نداره اینکه با اینکه برای ابا عبداللاله سلام بسیار دشوار، بسیار سخت مثل علی اکبری رو و این از کلمات ابوالدلال سلام بر میاد وقتی که فرستاد در همین لحظات دیگه همین لحظات بعد از نماز ظهر یک دو ساعت بعد از نماز ظهر دیگه وقت ایزام بنی هاشم شروع میشه و علی اکبر رو وقتی که میخواد کنه نگاهی به قطبالایه علی اکبر سلام الله علیه میکنه امام حسین و شک نمیکنه به پیشگاه الهی که خدایا تو الله مشهد الله و القوم خدای تو شاهد باش تو شاهد باشی بر این گروه من کسی رو دارم میفرستم که اشفهم ناس خلق و و منطقن به رسولک شبیه ترین مردم از جهت خلق خلق منطق خلق یعنی شکل ظاهریش خلقان شکل ظاهر خلقان اون سیره و درون اخلاق و منطقاً هنگام سخن گفتن همانند پیامبر اکرم سخن می گفت این البته درباره علی اکبر سلام الله نقل شده درباره فاطمه سلام الله علیها نقل شده که راه رفتن فاطمه مثل پیامبر اکرم بود و اینجا درباره علی اکبر سلام الله میگم ما هر گاه خواستیم به امام حسین میفهمد هر هرگاه میخواستیم یادم یاد دلمون برای پیام برکتم بر تنگ میشد به این جوان نگاه میکردیم خب چنین جوانی رو فرستادن به میدان و بنا بر تحقیق فرزند بزرگ عبا سلام علیه السلام بود اختلافی هست که آیا او و امام سجاد علیه السلام کدام بزرگتر بودن اختلاف هست اما اونچه که ترجیح میدن محققان این که علی اکبر بزرگتر بود پس پسر بزرگش رو، اکبر اولادش رو در میفرسته به میدان و او درخواست میکنه و امام علیه السلام مقاومت نمیکنه. هم نشان شوق علی اکبر سلام علیه به شهادت هست. هم نشان تربیت درست نیست که در دامان مثل امام حسن علیه السلام دیده این جوان. ارز کنم که و هم نشان این هست که دیگه لحظاتیش که نمیشه مقاومت کرد عبا عبدالله علیه السلام میداند که بالاخره بعد رفت و بعد اینها برن و اینها تا زمانی که از خانمی که اینها جانشون رو فدای عبا عبدالله علیه السلام نکنن اجازه نخواهند داد که عبا عبدالله باید. علیه السلام خود به اصلاح جانش در معرض خطر قرار بگیره نشان ایثار این فرزند هست به علاقه این فرزند به امباد شلا که همه جوانان ما حلگوشون رو حضرت علی اکبر علیه السلام قرار بدن از مشرق سرخ دیده دل سر می زد. خون خنده به برق برق خنجر میزد گردید فضا معترانگا که گل گلبوسه به پیشانی اکبر می زد ناگهان قلب حرم باشد و یک مرد جوان خرج علی بن الحسین علیه السلام علی اکبر از خیمگاه خارج شد مثل تیری که رهانی شبجر چنگ کمان فلمار آه الحسین فکتی سجده و سین دقلی افتاد، رب عاشه بدن و نه به سماه، محاسن بسوي آسمان بله انت. ثمّ قال اللهم جد قب خدا يا قدد شاهد باش، فقط برز عليهم خلام اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقاً به رسولت هر وقت دلمون برای پیغمبر تنگ می به علی نگاه می به به چه جوانی اخلاق جنب پیغمبر از همه شبیه ترست جنب پیغمبر از همه شبیه ترست حرف زدم جنب حرف زدم پیغمبر از همه شبیه ترست یا <تصفيق> یست <تصفيق> تبیه المصطفى حل دمعی له القلب و حفل دمعی زمم ال، نظره نظرت آیزم یک نگاهی از روی نومیدی به قدر و قامت علی اکبر خیلی علاقه داره به این پسر خیلی براش تخت از رفتن این پسر به میدان جنگ و علیه السلام اینه و بکا امام و سن شروع کرد های های جدیه جدیه جل. زهرا نوسی مولانی نفسی لیلانی بالاسی سر به توبای بابا ها زینجز لریگان با تون قلب صحراد علیسینا میداد جوی این جوان به میدان جنگ چزور جنگید و بعد برگشت پیش پدرش رو گفت پدر جان تکنیکی داره مرا میکشه ازت ترمود به او در جواب که برو به جنگ طولی نخواهد کشید که سیراب خواهی شد به دست گردت سیراب هایی شدنگز؟ از جون منی یاد سال آنام یاد سال جون آنام فاضی چوز لرم دا گت بالا دا جت بالامچه جوزلرم یول دا جت بالا مکبر زینب اخلاق جت بالا مکبر بدر هاشمیونیره میره یون مهرد فاطمه یون اومد است بری عاشر خوشمیون ابی عبدالله علیه السلام کم کم به سمت خیام میان و برای وداع با اهل بیت علیهم السلام یک وداع رو ابی عبدالله علیه السلام انجام داد به میدان رفت و بازگشت و وداع دوم که وداع بسیار است و بر اهل بیت اون حضرت بسیار سخت گذشته متن منقول در مقتل رو بنده قرائت میکنم انشاءالله همه در این لحظات دل هامون رو روانه کربرا کنیم و با دل یاری کنیم ابی عبدالله علیه السلام رو به اظهار یاری نسبت به اون بزرگوار پس از آنکه که امام علیه السلام به خیمه ها رسید و ملاحظه کرد که خیمه ها و ساکنان در آنان همه سالمن مجدلا با آنان خداحافظی کرد و همه را امر به صبر و شکی نمود، آنگاه جامعی پوشید و خطاب به اهل حرم کرد و فرمود از همکنون آماده بلا و مصیبت باشید و بدانید که خدای تعالی هامی و نگهدار شما خواهد بود. و به زودی شما را از شر دشمنان نجات خواهد داد و عاقبت امر شما را به خیر خوبی برگذارد. خواهد کرد و دشمنانتان را به انواع و اقسام عذابها و معذب خواهد نمود و در مقابل این همه بلایا و ها که متحمل میشوید شوید نعمتها و کرامتها به شما ارزانی خواهد کرد این مواظب باشید شکوه و شکایتی بر زبان نرانید و چیزی نگویید که از قدر و منزلت شما کاسته گردد فرمود استعد دول البلا وَعْلَمُوا ان الله تَعَالَى حَامِيكُمْ وَحَافِضُكُمْ وَسَيُّنَجِّيكُمْ مِنْ شَرِ الْعَدَادِ به خدا می دونی در این لحظات چه حالی دست داد به احل بیت عبا علیه السلام که در ادامه مقتل هست که در همین حال که اطراف عبی عبدالله علیه السلام رو زنان و فرزندان گرفته بودند متوجه جناب سکینه شد سکینه ای که در وار به حسن مصنف فرموده بود دائما غرق در یاد خداست دید از دیگر زنان فاصله گرفته و در کناری ایستاده و گریه میکند نزدیک وی رفت ضمن دلداری و تفقد از او امر به صبر و شکیبایی فرمود و به زبان حال میگفت ها دل ودا، عزیزتی و یوم القيامه اند حوض الکوثر عزیزم این لحظه وداع وعده ملاقات من و تو در روز قیامت کنار حوز کوسن فدعی البکا ولل اصار تحیعی گریه رو کنار بگذار و برای اسارت آماده و استفعر سبر الجمیل و بادری قد آماده صبر کن در مقابل مسائبی که در پیش داری و اذار ایتنی علا وجه الثرا دام الورید مبضعن فتسب و اون زمانی که دیدی بدنم رو روی خاک در حالی که قطعه قطعه شده و خون از رگهای بدنم بیرون میریزه در اون حاله صبر کن با زنان و دختران و اهل بیت هر کدوم به نحوی ابا عبدالله علیه السلام سخنگو و خدا میده چطور اینها رو دلداری داد ابا عبدالله علیه السلام و ندا کرد ابا عبدالله علیه السلام رو به دشمن تا اینکه حرکت کرد به سمت دشمن در ادامه دارد که تا زمانی که به خود و به زن و فرزندان خود سرگرد شد و از میدان کرد و آماده شد برای حرکت به میدان رفت به سمت میدان لحظاتی جنگید مکانی رو آماده کرد ابا عبدالله علیه السلام یک جایی رو باز میگشت به اونجا بعد از لحظاتی جنگیدن فریاد لا حول ولا قوت الا بالله سر میداد با حالت تشنگی دوباره بر می به میدان و جنگ میکرد دوباره میامد به اون مکان برای اینکه به اهل بیت اعلام بکند که اهل بیت من من هنوز زندم بدانید که حسین هنوز زنده است در این ده هزار دارد که ابا عبدالله علیه السلام نگاه کردن دیدن که شمر صدا زد به سپاهیانش که گفت که هرگز حسین از این آب نخواهی آشامید تا وارد آتش دوزخم شمیلا و حتی تردن ناری، کسی دیگری باز با استهزاب عباد الله علیه السلام. خطاب کرد که ای حسین مگر رودخانه فرات رو نمی نگری که مانند شکم مار از سپیدی میدرخشد درخشد به خدا سوگند، از آن ننوشی تا از تشنگی جان سپاری، یا حسین الا تر الفراد که انهو بطون الحیات فراتش را با من ها حتی تموت عطشا امام نفرین کرد در حق این فرد و در روایات دارد که این فرد پیوسته آب طلب می کرد می آشامید بلی به سیرابی نمی رسید این یک لحظه از لحظات اواخر حیات ابی عبدالله علیه السلام تا می رسد به اون لحظه ای که ابا عبدالله علیه السلام به میدان می رو و به لحظات شهادت نزدیک می شه امام علیه السلام از شدت خستگی و تشنگی همچنان ایستاده بود در میان میدان که ناگاه سنگ به پیشانی حضرت خورد و حضرت لباس مبارک رو بلند کردند که خون رو از پیشانیشون پاک بکنند و خون رو از چشمانشون پاک بکنند که تیری بر قلب مبارک امام سلام الله علیه فرونش است. و امام علیه السلام فرمود بسم الله و بالله و علا ملت رسول الله سرش رو به آسمان بلند کرد حضرت فرمود خدا یا تو می دانی این مردم کسی رو می که غیر از او پسر فیغنبری در تمام این دنیا وجود ندارد الهی این که تعلم انهم یقتلون رجلا لیس علا وجه الارض ابن نبی غیره. در اینجا دارد که امام علیه السلام تیر از پشت بیرون کشید خون مثل ناودان از جای آن بیرون میریخت دست خود را زیر زخم گرفت و همین که پر از خون شد، آن را به سوی آسمان پاشید و فرمود، این مصیبت نیز بر ما آسان است، زیرا خدا آن را میبیند، هونون علی ما نزلبی به عین الله خون را به آسمان پاشید و حتی یک قطر از آن هم به زمین برنگشت مجددا مشت خود را از خون پر کرد، و بر سر صورت و محاسن خیش مالید و فرمود میخواهم با همین حال که سرم از خون بدنم رنگین است بلقا الله و ملاقات جدم پیغمبر خدا برسم و شکایتشان را به او تقدیم کنم و بگویم ای رسول خدا فلان و فلان مرا کشتن ها کرا اکون حتی الق الله و جدی رسول الله و انا مخذوب بدمی و اقول یا جدی قتلنی فلانون و فلان در ادامه داره با خونریزی زیاد و ضعف فراوان از پای درآمد به زمین نشست، توان نشستن هم نداشت که پیوسته به روی زمین میافتاد در این هنگام مردی به نام مالک ابن نصر نزد وی آمد زبان به ناسزا گشود و, و سپس شمشیری بر فرق آن حضرت زد، شبکلاهی که بر سر امام علیه السلام بود پر از خون شد، امام فرمود امیدوارم از خوردن و آشامیدن با این دست محروم کردی و خداوند تا را با ستمکاران محشور گرداند. پس از آن شب کلاه را برداشت و امامه را بر کلاه پیچید و بر سر گذاشت و در این لحظات بود که اون کسانی که قاتل عبا عبدالله علیه السلام هستند شمر وارد اون صحنه شد سنان ابن انس وارد اون صحنه شد. و اون لحظات خونبار لحظات فاجعه آمیز فاجعه بزرگ تاریخ رخ داد که سر از بدن ابا عبدالله علیه السلام جدا شد و عالم در این مصیبت بزرگ فرو رفت آسمان گرفت خسوف شد خسوف شد و بادهای سیاه و سرخ و زلزله ای که در زمین رخ داد I'm gonna be the one to hold you tight. I'm gonna be the one to hold چشمه ای کل این لحظات واقعا کار سخت و دشواریه چرا که شدن چه نباید میشد پیچیده شمیمت همه جا ای تنه بی سر چون شیشه عطری که سرش گم شده باشه ایجاب بی بفهمید بعد از شوده ترترش یکی از صحنه های بسیار چون سوز بعد از عبدالله علیه سحنه بازگشت عصب بی صاحب اون حضرت به خیام هست در زیارت ناهیه منصوب از حضرت حجز سلام الله علیه و عصر عفرسو شاوردن اله و خیام که, که من باکیه. این عصب بی صاحب و در این حال با معرفت بی که حال این مقدار شعور رو دارد که حامل چه کسی بوده میاد با حالت گریه به سمت خیام در مقاتل میخوانید که پس از شهادت عبدالله علی السلام اصب اون حضرت رو به خیمگاه ها برد. و از مقابل سپاه گذشت اونها تلاش میکردن که مانع بشند این اسب به سمت خیمگاه بره و از حمله کرد و خود رو نجات داد از دست دشمنان و آمد مقابل خیام در حالی که پیشانی خود را به خون حسین آوشته کرده بود به سوی خیمه زنان دوید در حالی که شیهه می کشید و سرش را جلوی خیمگاه به زمین می زد. چون خواهران دختران و اهل بیت امام علیه السلام اصل رو دیدن که کسی اون سوار نیست <تصفح> اصل بی صاحب رو دیدن <تصفح> به سمت خیمه ها میاد صدایشان به نالا و گریه بلند شد در این هنگام ام کلسون دستش رو بر سر گذاشت و پریاز دد و محمدا و جدا و نبیا، و ابل قاسم و. کسی دیگه رو ندارن ب... کمک بخوان پیغمبر اکرم رو ندا میده شود میزنند وا و وا جعفر او وا حمزتا و حسنا ها دا حسین بن العرا سریا الرأس من القفا مسلوب العمامه بردا دلت که گو و محمد و وا جدا او وا انبیا او وا نبی یا وا این حسین که عریان بر زمین افتاده سرش بریده از قفاس امامه و قبال که او به یغما برده شده و دنبالش دارد که قش کرد دیگران همینطور زینب نوهه می کرد تپانچه سیلی به صورت می زد می گفت و محمده خبر نداری که با حسین تو چه رفت و بعد چه صفت او را کشده و جسد متحرش را در صحرا انداخده اند و محمده اهل بیت تو اسیر شدند و فرزندانت در صحرا بی فریاد رسمانده اند و دشمنو دوست بر ایشان می, می از سمت قربت اسبی که تنهای تنهاست تصویر مردی که رفته است در چشمهایش و در عمق یادش نهفته است خشمی که پایان ندارد در زیر خاکستر او گلهای آتش شکوفاست در جان او ریشه کرده است عشقی که زخمی ترین است زخمی که از جنس گودال اما به جرفای دریاست هم زین او باجون است هم یال او غرق خون است جایی که باید بیفتد از پای زین همین جا. باید صحبت است در باره چاودت از توابل علی و اتفاقاتی در این عصر افتاده که واقعا زبان قاصر از گفتنش آقای جواد خیلی خیلی لطف فرمودید ما واقعا استفاده کردیم ان شاء الله که گرامی هم از وافر بر برده باشند از کلام شما و ان شما هم مجبور باشید خیلی لطف کردین ان شما, شما مجبور باشید ان شاء الله خیلی واسط دعای خیر دارمه شاهیده جدا کن خدا کن شفته می فوت می زده در پیش چشم زیر یال ای که از دریا یخون خان خیم جه زینب ای که از دریا یخون خیم جه زینب تورا نال کرد ازت صدا یارتنا <تصفيق> ز دفع یا شهید سر جدا یا لیتنا ای شهید سر جدا یا لیتنا خشده یه همه تون تسکیف و تحضیحت میگم از و داری هاتون مقبول در درگاه حضرت حق شده باشه در این دسته برنامه توفیق هست تا میزمان پژهت الاسلام و المسلمین و ساد داجه وردی باشیم داجه وردی خوش آبدید خرام میکنم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم یا عبا عبدالله السلام علی به زینب السبور و لسان حشکور نفته است ولی ساحل افق می سوزد از شرار نارنجیاش هنوز از شعلهای سرخ شفق نقش یک نبرد تا بیده روی آسمان حلوم در ریخته در پهن دشت رزم پایان گرفته جنبش خونین کارزار آنجا که برق نیزه و فریاد حمله بود پیچیده بانگ شیهه اسبان بی سواد خورشید رفته است و به بخوایان رسیده رد خورشید رفته است و به پایان رسیده رزم اما نبرد باطل و حق مانده ناتمام وین صحنه شگفت به گوش جهانیان تا روز رستخیز سلامی دهد قیار ای دل بر گل پیرون ای یوسف دور از بطر چانم به لطا بردگی با رفتن از روح من ای دل بر گل اینو ش دورجانمللب آور تا لحظه شاادت از اوبدلا بحث تشنگی و بحث تشنگی خیام من نمیدونم اهل خیام از سیراب آب شدن. آیا از لحظه شهادت تب عبدالله سیراب شدند یا از زبانی که دیگه زینب شد ساربان و زینب کاربان رو هدایت کرد؟ از انام به بعد به نظرم صحبت م. از زینب باید کرد همینطور کنم خدمت شما که صحبت از وجودی که بجت خدا بر قلبش سلام میکنه و بر زبان شکورش درود میرفید. خیلی سخته. عجبا. خدا از ما بگذره. از ما بگذره کسانی توصیف میکنیم که نمی از اقیانوس معروفتشون رو نچشیدیم ندیدیم. از خودشون میگه. از زمانی که در کنار القم پرچم زمین افتاد با اون پرچم رو به دست گرفت. از زمانی که آقا عبا عبدالله دست بر قلب زینب گذاشت به طبیل آقایمان سجاد شد. میفرمایند شب آشورا پدرم کنار خیمی خودشون نشسته بودن اما اما رو پرستاری میکرد. من چشم باز کردم دیدم پدرم داره شمشیرشو تیز میکنه شعر جدائی رو میخونه دنیا توف بر تو بر اون چیزی که بر این اهل خودت وارد کردی موف فهمید که این شعر شهادت و جداییه فریادی زد و قش کرد پدرم مدن بالا سر ام زینب رو به دامن گرفتن سر ایشون رو خانم حضرت زینب چشم باز کردن تعبیر عجیبیه. گفتن زینب جان چرا بی سبوری بیکنی؟ خانم فرمودن مادرم رو شهیده کردن. امیدم به برادرم بود و به پدرم بود. همینطور پدرم رو برادرم رو. خودم با برادرم جگر تکه تکه شد دیدم. اما امیدم به شما بود. شما سمره همه گذشته و امید همه آینده من هستی. چگونه توقع دارید. ترین در دریای دوشنه هم. از من بخوایی که آرام باشم از در تعبیری دارم خیلی جالبه خیلی قشنگه این تبیر روز آشوام تکرار کردن که پدرم بهتر از من بود. مادرم بهتر از من بود. برادرم بهتر از من بود. همه رفتن. عالم میره عالم فانی این درس‌ها خیلی مهمه ایناست که قوت و قدرت به زانو میده و الا نمیشه تحمل کرد به مقدار بلایی که برای ما کل کرده خدا به ما ارزش داده تحمل کن تازه تو مصیبت‌ها شروع شد و عجیبه وقتی که خانم خیمه بودن محور خانواده بودن قمر بنی هاشم محور بنی هاشم بودن و لشکرگاه بیرون بودن زینب محور درون بود دو بار رو اینا افس می‌کردند رابی میگه بگم خانومی بودم بالا اومدم خیمه ایستاد حالا تصور کنید شمرون جالسون علا صدره شمرو سینه نشسته اونا که عزیزانی که رفتن تل زینبیه با مقتل با خیمگاه تل واسط است زینب یه نگاهش به خیمگاه بود یه نگاهش به مقتل بود میگه به خدا قسم وقتی که خواستا این حالا چه تعبیری بگم شمرو جالسان علاسده. همین عربیش کافیه خطاب میرسه ارجع الی حرمک خواهرم برگرد به حرمت مگه این خطاب رسید به خدا نیدن یک گام جلو نگذاشت داره میبینه با تیغ تیز بر بدن زخمی برادر نشسته خنجر روی گلوی حضرت گذاشته حاجر که اون مقامات رو داشت وقتی که علامت خنجر رو رو گلوی قش کرد. این علامت نمیبینه خود خنجر رو میبینه ارجه الی حرمه برگرد اینا اصلا تصویر زیبای عبودیگته تصویر زیبای ال ویژون که تو عالم امتصال عمر مولا رو امتصال عمر خدا میدونستد گام جلو نمیزد بر می گرده. اما عقب عقب بر میکرد وقتی که زمین و زمان به هم می ریزه خورشید میگیره چی میشه آقای ما به سجات میفرمایند پسر برادر چه شده؟ میگه خیم رامه بالا بذار. وقتی خیمه رو بالا میذره میبینه که حالا شمر سر مبارک رو گرفتن حالا مصیبت زینب تمام میشه نه تازه شروع میشه زینب حامله حامیه با همه وجودش با بدنش با شلاقهایی که خورده زینب زمین نمینشینه ببینید لشکر تا روز قبل قمر منی هاشم رو داشت منی هاشم رو داشت اصحاب رو داشت حامی داشت خیمه ها و خانواده آقای مام حسین در حمایت بودند همه اون بغوزه هایی که از بدر و خیبر رو نمیدونم هنه این و اینها این افراد در دل داشتن همه رو تبدیل کردن به سنگ به هجوم به عصب تازه نعل شده تازه مصیبت شروع شد زینب است و خانواده و پیام شهادت و حمایت از دین و اینکه خون از بین نرود. اینکه ذلت بر چهره این خانواده ننشیند اینکه کوفه باید بیدار شود گرمی خون باید منتقل شود خونی بر زمین زیخ بر آسمان باید نقش ببندد بنده این بد خون در جایگاه خودش خودش خودشو بذارد حسین باید اصفه بودنش محقق بشود تبیدی که برادر از ایمون قرار شدین در روزه صحبت کنیم که از اینجا من صحبت میکنم پیوند بین به و قدیر و آشورا و انتظار آقای امام زمان این خط استمرار نور خط تحقق حق، خط محقق شدن ارزش در این مکتبانوی بزرگی پرور شافته مکتب فاطمه با همه وجودش قرآن خانی، حافظ قرآنی، نماز شب خانی که امام حسن میگه خواهرم مبادا در نماز شبت مرام فراموش کنیم من میخوام از عشق نماز شب تو من بهره بگیرم ما رو یاد کن مگر زینب فراموش میکنه حسینش اما حسین به سکر زینب خودش به این پیوند بین خودش و زینب اهدیاج لحظه ای نکرد من خواهشم اینه بعد از آشورا کاروان آشورا رو فراموش نکنیم بریم همراه اینها بریم کوفه بشینیم بریم کوفه در نمیدونم خرابه ای که اینا یک ماه بودن با اون وضعیده این هم چه کرد بچه ها رو حفظ کرد با عبیدالله چگونه برخورد کرد چهل چه منزل چگونه چه مدیریت کرد چگونه پشت سر امام سجاد خودش حامی بود زبان گویا بود زبان علی در کام بود و چه گفت چه واقعا بعد روایاتی رو که در جلسه یزید حضرت استدلال بهش میکنه کارهای تفسیری بشه چگونه ازت جواب میدن چگونه جفر رو عوض میکنن چگونه جو با قدرت و هیمنه و میمنه که اونا درست کردن با زرق و برق خودشون میخوان پا بذارن رو حرکت امام حسین و دف کنن نور خدا رو خاموش کنن چگونه زینب روش هم میکنه چگونه حامی دین میشه شکست شدن کمر قمر بنی هاشم و شدن دست اون حمایت بود و زبان گویای زینب و مدیریت عالی او و چگونه مدیریت او کنشانالا اگر فرصتی باشه بهش می پردازیم چگونه صحبت کرد دوبال حرکت ادامه حرکت آقا عبدالله بودن سلام بر قلب زینب صبور و لسان شکور سلام بر دختر علی و دختر فاطمه کشته می شود یا لباس. کشته ای را اگر به شناسایی کنند به چهرهش می نگرند یا به لباسی که پیش از رزم برتن کرده است اما اگر دشمن آنقدر پلید باشد که سرها را از بدن جدا کرده و برده باشد اگر آنقدر خبیس باشد که پیراهن کهره نیز، به قنیمت برده باشد چه باید کرد؟ لابد باید به دنبال علامتی، نشانه چیزی باید گشت. اما زینب عقیده بنی هاشم هیچ نیازی به این چیزها ندارد. او بوی حسین را میشناسد. امروز ما گرامی می‌داریم و عزاداری می‌کنیم و نوحه می می‌کنیم برای حضرت حضرت ابوالفضل العباس علیه سلام به خاطر زحماتی است که حضرت زینب سلام الله ها کشیدند و هدایتگری است که ایشون داشت. اگر یادتون باشه ما در مباحث قبلی خودمون یه سوالی رو مطرح کردیم. گذشته از سوال اصلی که هدف آقا عبدالله چه بوده است؟ بله یه سوالی مطرح شد که خب چرا این گونه؟ من معروف اگر بوده خب حضرت امتونه اصلا تو امر معروف بکنن حتی اگر شهادت بوده همینطور که امام مشتبه در مدینه به شهادت رسیدن خب آقا عبا عبدالله اونجا به شهادت میشه چرا این گونه؟ چرا علنی چرا مسیر خیلی اصلی پنهانی هم نرفته از مسیر رو انتخاب کردن از حجاز بیان از مدینه تا مکه 400 بودن، چند کیلومتر بله از مکه بیران به طرف عراق اونم به مسیرهای منازل مشخص عبور کنند و بعدا در کربلا و این با مردم صحبت کنند گفتگو کنند در اونجا صحبت این بود که جامعه دینی ریشاش متعفن شده بدعت فتنه شهوتگرائی شهوات تسلط شیطان استحفظ علیهم ما شیطان شیطان برشون مسلط شده حراب خوری تحریف آیات قرآن کنار گذاشتن اهل بیت به عنوان متولیان امر ارشاد مردم جامعه جامعه است که دین رو کنار گذاشته اما با دین خطرناک خطرناک‌ترین نوع تحریف دین با دین است بیان تحریف کلمات یا حرفون الکلم ان مواد. نگن دیندار نباشم. بیان دین دیندار یعنی نباش میگن دین کفر و شرک و فسق رو لعاب دین بهش بزنن رنگ دین بهش بزنن از درون دین رو پوک کنند، حتی اهداف دینی رو دنیایی کنن مبانی دین رو, رو تحریف کنند، احکام رو گذینشی برخود کنن یومن و بر و نکفر و بر مؤمن و بر و نکفر و بر باشه که بدترین نوع تبدیله گسال پرستی رو جای خدا پرستی خورخور خور گساله رو جای عبادت خدا رو بذارن این چیت هایی رو که در آیت قرآن ما داریم خب جامعه که گرفتار این شبهات شهوات به ها فتنه ها گرفتاری ها دنیا تلبی شیطانی تابیری سکر کلمات خود آقا عبدالله علیه السلام مشهوده و مردون میش ریشه ای ندارن قبید و دنیا شدن یکی از کلمات آقا عبدالله در مسیر هستن سخرانی که میکنن ادامه صحبتشون ریشه یابی میکنن که دنیا سیتره پیدا کرده دنیا شده نهایت هدفتون این جامعه دیگه با گفتگوه تنها درست نمیشه احتیاجی به یک شک داره احتیاج به یک حرکت انقلابی درونی داره به تعبیر ما سارالله یه خون خدا میخواد دلسته. که در این بدن جریان پیدا کنه و یک شک به این جامعه ایجاد بشه کوفه انتخاب میشه چون بالاخره کوفه بهترین جا صدای اونجا تنین انداخته انقلابیون اونجا جمع هستند قبیلهایی که ارادت به امیرالمومنین دارن بهترین جا من باز حالا در این برنامه بود یا برنامه دیگه بود خدمت عزیزان عرض کردم بصره عثمانی هستند شامات منطقه شام و فلسطین امروز عموی هستند منطقی که نزدیک به ایران هست و علویون در اونجا علاقه دارن موالی ارادتمندان آقا میرالمومنی و شیعیان حضور دارن و همم هم اکثرا متعرضن کوفه است به خاطر بخاطر همی که کوفه رو سعی میکنن افرادی رو انتخاب بکنن که شقی ترین والیاشو نسبت به شیعیان باشه تا اینا رو حفظ کن. آقا ابو عبدالله طرف کوفه میکنه همه جاها هم که میره داره امت رو بیدار میکنه یک تظاهراته یک تبلیغ علنی پرچم علنی بلند کرده که من بیعت نمی اینها مرا خواهند کشت و حتی برادرشون میگه ابن عباس سختی که میاد از مکی که ازت میخوان خارج بشن و حتی محمد ابن هنفیانی که تو ذهنم هست وقتی یه جلوی شده رو ازت رو میگیرن که تو را خواهند کشت ازت میگه نه من رو نمی یه خدا نلا شایرانی ختیلا خدا میخواد من رو کشته پس کشته شدن این هم یک در حقیقت انتخاب هدف بهتر زیستن چون امام رو خواهند کشت یا در مدینه یا در مکه یا در بین راه امام میره در بهترین جا به شهادت برسه که خونش زاینده باشد خون زندگی ساز باشد مرگی مرگ زاینده است که زندگی ساز باشد نه فرصت سوز باشد بعضی از مرکا تیکه تیکه یا تیکه تیکه شدن با خود چون برسن با هوا خودشون رو زدن به کشتی های دشمن تیکه تیکه شدن اونا هر تیکه تیکه شدنی کاملا ارزش نیست کجا و چه بهرهی میبره زندگی زندگی زاینده است که در این مرگی, مرگی زاینده است که در درون زندگی ساز باشد نه فرصت سوز باشد خب این حرکت احتیاج داره ادامه پیدا کند دو چیز احتیاج داره گرانی خطیلا و اطفالی سباییا خانواده اثارت این خانواده چرا حضرت میخوان شقاوت پرده نیرنگی که اینها بر چهره زدن کف رو در زیر اون پرده پنهان کردن شقاوت رو پنهان کردن بیدینی رو پنهان کردن حضرت میخواد این درخت رو تکون بده تا نبودن ریشش معلوم بشه میخواد سمرات کذب این درخت بنی امیه رو درخت کف رو درخت نفاق رو میخواد نشان بدهد به محاجب کشاند که کار رو خانم حضرت زینن و خطبه های امام سجاد علیه سالا علایهم السلام انجام بدن یعنی چی ببینید اساس دین برای با بیانات و دعوت بله. اساس دینه که ها حیات پیدا کنند تعبیری که دوستمون گفتم بهش بپردازیم به دین آمده است با انسان گفتگو کند یک نگاه جدید به انسان بدهد یک تعریف جدید به اهداف انسان بدهد اومده به انسان بگه تو چی هستی کی هستی از کجا هستی به کجا میردی؟ آنهایی که دین ز نصف راه میگیرند در رفاعش سمای میگیرن دین رو نفهمیدن اونهایی که حتی تکامل رو هدف دین میگیرن دین رو نفهمیدن دین هدفش لقاء خداست روشش هم عبودیته ما خلقتل جن و از الا ل یعبودون عبودیت شکل و م... مثال و نمونه و قالب خدایی گونه شدن رو بر انسان زدن عبد همون کسی که به کلمت الله میرسد هی الالیا میرسد خلیفه خدا میشود بین بودن و شدن رو عبودیت فرمی کند و راهشم با وحی است. و جلودارشم دین متکی به وحی است که عیمی محسومین هستند حالا این دین مزمهل شده و حقش عمل نمیشه معروفش منکر شده منکرش معروف شده منکر جلودار شده فاسق و فاجر کسی که آلوده به انواع میکروب ها هست خودش رو به امان طبیب داره مداوا می‌کنه، کنه که طبیب راستین هستند. بعد بسط بیان چیکار باید بکنن انسان رو خطاب قرار بدن گروه ها و جوامع رو خطاب اگر از اقا ابو عبدالله من یادمه در دوران قبل از انقلاب بعد از این تحلیلگرای مارکسیستی میگفتن این تو خب حرکت امام حسین حرکت قیامی بوده ما برایش ارزش قائل اما روش انقلابی رو نداشت انقلابی که نمیاد که تو خ... راه بره خب ترورش میکنن میکشنه بعد پنهان بشه یادگیری کنه گروه ها بکنه نمینام کنه ترور کنه رای ها فکر میکنن روی اونا نمیخوان به قدرت برسن دیروز با با شما بود صحبت کردن چون یه من صبح داشتم حضرت قسم میخورن ما اهل بی تنافس در سلطان ما قدرت رو برای قدرت نمیخاییم ما حکومت رو برای مال و ثروت اندوزی نمیخوایی. ما دوریم از اینها ما قدرت و ثروت رو میخوان به اهلش برسونی روش ما برای پیدایه حق و, و حقم با فهم ایجاد میشه اونها نمیخوان باید قدرت رو بگیرن اونها میخوان آدم ها رو عوض کنن ولو وکه خودشون هم دیکه دیکه بشن میخوان آدم ها یک نگاه جدیدی به خودشون به برنامه زندگی خودشون به اهداف زندگی خودشون داشته باشن خب این پیام یک تنش رو ایجاد کرد که گفتار آقا عبا عبدالله و صداقت حضرت مانه. که حضرت آمد حتی با علی اسقدش اومد با افراد خودش با اصحاب خودش اومد صحبت کنه با آدم ها یک نگاه جدید به زندگی و دشمن شناسی رو کاملا نشونه کی داره شما رو جدا میکنه خز... وجودی زمین خورده وجودی به خون آغشته شده وجودی سر از تن جدا شده این وجود و این حرکت عقیم نباید بماند عبتر نباید بماند همینطوری که رسول الله فاطمه کوسرش بود زینب کوسر فاطمه است کوسر حسین است اینو دقت کنید دشمن به رسول میگفتن تو عبتر هستی خطاب رسید اینا کرد الکوفر با وجود کوسر کسی ابتر نید کوسر این کسی رو و خیر کسی کسی که استمرار دارد فاطمه استمرار دهنده رسول بود هم نورانیت رسول رو علم رسول رو مقام رسول رو ادامه داد در نسل خودش و در فهم خودش و هم زینب ادامه داد حرکت آقا عبدالله الحسین رو و این پرچم رو به دست گرفت حالا این بحثش هلا فکر نمی کنم امرو بهش برسیم حضرت زینب چی کار کردن که ادامه پیدا کردن یعنی ما از ما بدونیم چه چیزایی در مقابل حضرت آمده و اهل بیتو چگونه حفظ کرد امام سجاد رو چجونه حفظ کرد خانم حضرت زینب امام سجاد رو حفظ کردند دو بارشون رو ترور بکنن بکشن یک بار در جلسه یزید و یک بار همین قروب آشورا حضرت زینب حفظ کردن چگونه بچه ها رو حفظ کردن چگونه پیام رو و چگونه مردم رو آگاه کردند و موانع رو برداشتند، فهم و شعور رو ایجاد کردند. اگر توابین ایجاد شدند، اگر مختار بعدن قیام کرد و انتقام رو گرفت حد انتقام توابین یک ضربت رو زدن مختار از کنم انتقام رو نشونده نگداشت ادامه پیدا کنه مانه. و بعدها حرکت بیت در امام سجاد شکل و نمود تک... کاملتری به خودش گرفت تا رسید به امام صادق که نهدت علمی و فکری ما شروع شد زمان امام از کاظم علیه السلام و امام رضا نهزت کلامی ما تکمیل شد این شجره طیبه استمرار پیدا کرد و مخاطب خودش رو پیدا کرد کوفییونی پیدا شدن که بار علمی رو به دوش گرفتن و الان اگر نبودند کوفییون و نبودند قمییون روایات و دین از بین میرفت نتیجه حرکتی بود که ایجاد شد و اون هدف بود که انسانها بفهمند بخواهند بیاین زیر بار مکتب فکری علمی عرفانی اهل بیت برن و جامعه رو متحول کنن که شاید اگر فرصتی باشه بردنش می خیلی ممنون متشکرم متحکر امای از شما گل‌ها پرپر شدند گل‌های بر خاک افتاده نیز او بقدر که گلابی ندارند تا زیر سم اسبان لگد مال شود ترا به خدا بس است به خیمه‌ها چه کار دارید شیهی قوارالودی از سمت قروب به خیمه‌های یتیم میدازد خاک عالم بر سر تمام روزگار دیگر چه چمانده برای هستی بی خورشید و بی ما و بی ستارگاد. الا اقسمو به مباغ انجون و انهو لقسم لو تعلمون عظیم آری آری دیگر من به آسمان قسم نمی خورم. اینک آسمان توهی مانده از تمام جنج های هستی خیش خورشید به خاک آرمیده خونین و بی محتاب بر خاک افتاده چاو چاو و بیداست ستارهها همه در خاک غلطیدند خانمان پرستوهای آسمان خاکستر شده است دیگر چه برای آسمان سید دست با داده در حسین این سید به در خون که هم استفاده ببریم از کلام موجود و اصلاح و مسلمین استاد واجه بردی خیش میکنم خط معرفت و شناخت و ادامه اون ایمان و عشق و به دنبال اون عمل و اقدام و امتصال و اطاعت امر این سگام اصلیه برای اینکه که انسانها دخول در دین رو داشته باشه بله. معرفت و شناخت عشق و ایمان عمل و اقدام و امتصال امر بله. هر کم در جایگاه خودش یعنی اگر عشق و ایمانی باشد بدون معرفت و شناخت ادامه نخواهد داشت و اگر شناخت و معرفتی باشد عشق و ایمانی هم شکل بگیرد عمل و اقدام و تسلیمی هم نباشد به تعبیر روایت مثل درختی است که سمر ندارد بی است این خط جریانی این خط از سیر و سلوکی انسان مؤمن باید تحقق پیدا کند تا بگیم درخت معرفتی یک انسان به سمر نشسته و نحال وجودی انسان مصوره سمر شده حالا من چون دارم تیتوار مطرح می چون صحبت شد که خوش خوش. آقا با عبدالله آمدن احیاگری کنند و جریان بینشی و معرفتی و انسانها رو برسنن به حد عبودیت که هدف از خلقت عبودیت است که ما خلقت الجن و الانس الا عبودون در همینجا می نکته رو مطرح کنم اگر در بعضی از روایات ما لیعرفون مطرح شده که بعضی از عرفا میگن هدف از خلقت ارفان هست. این عبودیت هست. عبودیت عرفان است اینجاها عبودیت است عبودیت متکی به هدف از خلقت ما خلق تل جن و الانس الا لیعبدون. عبودیتم صرف عمل به احکام نیست عمل رو انجام بده عبادت نیست عبودیت است عبودیت این خدا رو حاکم گرفتن بر دل و جا خدایی که من در ذهنم شناختمش در دلم بهش ایمان آوردم اش پرزیدم. و با عمل و اقدامم مستقر کردم. در همه وجودم جریان پیدا کرد این خدا میشه حاکم من میشه من میشم عبد او یا که نعبود و یا که نستعین. حد بین عبودیت و استعانت که منتهی میشه به صراط مستقیم من یعنی بالله به الله فقط هدیه یا سرات مستقیم خب پس بدون معرفت از ما عبودیت رو نمی خورن. بدون عمل و عمل ساله و امتثال امر مولا عبودیت ما محک نمیخورد. بله. بدون جریان شناخت و آگاهی و معرفت و عشق و ایمان و شور و شیدایی به مرحله عبودیت نمیرسیم و این جریان در ما سبز نمی شود انسان وقتی که او رو انتخاب کرد عشد شد عشد چی؟ حب بند. بیشترین چیزی رو که حب داره لله هم ذکرش بالاترین ذکره ذکر خدا رو دارد و هم حب خدا رو دارد بیشترین حب رو دارد و بالاترین ذکر رو دارد ذکر در حقیقت آبیاری کردن درخت معرفتی وجود ماست ذکر الله ذکر الله بکران کفیران و سبحوه بخورتن و عصیلا ذکر خدا که ذکر حسین ذکر الله این درخت معرفتی در ما توحید رو ما میشم موحد از کردم در که از بحثا یک جامعه توحیدی داریم یک انسان داریم، یک آلم توحیدی داریم یک عالم توحیدی داریم عالم توحیدی است به امر خدا حرکت میکنه سیرش رفت و برگشتش به امر اوست او قاهر است دو مرحله باقی میماند که این سیر هماهنگ بشود او علی الله سیر میکند انسانم آمده است و می علی الله المسیر باشه علی الله المنتها باشه نهایت هر عمل من نهایت هر فکر من نهایت هر عشق من باید به او منتهی بشود تا ابدی بشود نهایت هر حرکت اجتماعی هدف هر حرکت اجتماعی باید به سمت او باشد میگیم حکومت توحیدی حکومت توحیدی هدف اجتماعی جامعه دین است و عبودیت هدف انسان موحد است که این سه جهان جهان هستی جهان درون من و جهان اجتماعی من همسوی او بشوند و به سوی کمال و رشد رو به طبیل خدا میرن آقای امام حسین علیه السلام سبیل رشاد راه های رشد رو هدایت بشوند راه ببرند و اقدام کنند ببینید این سه مرحله پس کسی که میخواد اختدار احیاء تفکر دینی و خون حسین بشوند باید فکرها رو به جریان بندازد جهالت ها رو کنار بزند اون چیزایی که موانع عشق به خداست و ابد خدا شدن هست رو کنار بزند گفتیم دو دشمن اساسی برای این انسان هست یکی نفس انسان هست یکی تاقوت و شیطان هستن شیاطین هست حالا در شکل تاقوت طاغوت شیطان اجتماعی است در قالب فرعون در قالب قدرتها، در قالب ثروتا نمرودها، ها این نمادهای قرآنی که ما داریم و شیطان شیاطینی که انسان رو میخوان حقیر کنند، انسان رو میخوان بترسانن انسان رو میخوان عبد خود چون قرار بدن انسان رو میخوان اقوا کنن انسان با این دو عنصر بجنگه حالا انشاءالله تو جلسات بعد بهش میپردازیم که چگونه خانم حضرت زینب آدمها رو جهالتشون رو کنار زد چگونه قدرتها رو حقیر کرد قدرتهایی که برای خودشون هیمن و میمنه رو قائل بودن حقیر کرد بله. عرضش های گذشته از رسول الله رو احیا کرد نورها رو مطرح کرد آیات رو تفسیر کرد خودش تفسیر صبر و مقاومت و حیاب و قدرت یک کاروان به ظاهر شکسته اما در واقع بسیار عزیز بود اینها رو نموتاشو انشالله اگر. مرخی آشورا گذشت، سرگذشت عشق بود، اما گذشت، میکشان افتاده و ساغی نماند، ای در ساغری باقی نماند های وصل را نوشیدند جامعه خون به تن پوشیدند آشق و معشوق یک جا سوخته ساخته با سوز دل تا سوخته هم سبوبش کسته هم خم ریخته محخصو ورده انجم ریخته پار پاره, پاره آشقان سین چاک سینه های چاک چون آین پاک پیکر قرآن ناطق چاک بود ناطق قرآن به روی خاک بود سینه ها بر تیرها آماد شد، باغ سرسبز بلا تاراد شد، هرچه گل در باغ یک سر چیده شد، بزم عشق و آشقی برچیده شد. باغ عشق است و گلش ناچیدنی گرچه یک گل هم ندارد دیدنیست بس که بد مشتاق از باغ جنان باغبان آمد به سیر گلستان آمدم ما طاقت دیدن نداشت رفت و باغ خود به بلبل واگذاشت بل بل بلبلی دل سوخته، جان سوخته، آشیان او چو بستان سوخته، چون نسیمی رو به سوی باغ کرد، دشت را چون لاله ها کرد. با چراغ عشق، گرم جستجو، خاک را با یاد گل می کرد بود. تاب دیگر در تن زینب نبود، بوی گل می اما گل نبود. ناگهان از زیر شاخ و برگ ها داد گل آوا که این سویم بیا آمد و زد شاخه ها را بر کنار کم کمان گمگشته گردی داشت کار یافت آن گل را ولی پرپر پر شده پاور پاور پیکری بی سر شده داغ لاله در بر گل جا گرفت کار عشق و آشقی بالا گرفت دید آن تن زخم پا تا سر شده آسمان عشق پر اختر شده گفت آیا یوسف زهراتوی؟ آن که من گم کرده ام آیا توی؟ ای گلم؟ ای هرچه گل پیش تو خار زخم تو چون درد خوهر بی جای سالم از چه در این جسم نیست باقی از این جسم غیر از اسم نیست پای تا سر غرقه در خونی چرا آفتاب من شفقگونی چرا ای کتاب ای معنی ام کتاب از چه گشتی فصل فصل و باب باب ای شده باخون نمازت را وزو تا قیامت آب شد بی آب از نمازت سربلند اهل نماز بلکه مسجود از سجودت سرفراز ای تو را سد چشم ی جوشان زخون زخم تو بیرون و زخم من درون رفتم و باشد به هنگام سفر جان به پیش این تن و تن پشت سر می نهم در ره گرین هنگام گام میکنم روز عدو در شام شام ناگهان آن تفل دردانه رسید بلبل و گل بود و پروانه رسید خانمان کن سره سپاری باز هم یک سفر مضابنه از دل قتلگاه را و می‌مان در پیش دل براش دل اون تک تک کودکان زخمی را بیبینه تا کتل‌ها سوار عرش دار که بعد یک خریب نشه صدفه دیده را دور از از مدینه که آمدم این جان دل سرگشته با تو تاب گره علی اکبر انان مرکب را دست عباس تو رکاب گرفت کجاز علی اکبرم بیاد رکاب بگیره کجاز قاسمم بیاد محمل بگیره خوبهایم به خواب خوابیدم با بدان زمان همسفرم زینا باشم, باشم با هم سفر باش با سال با عمر سر خوب هایم به خواب با بدن زمانه هم سفرم هر خو جایی که بینگر باشد سر هر نیزه شام غریبان حسین امشب است. یکی کسی آل امشب است. شام غریبان دوستان عزیز من و تسلیت میگم به همه شما شنوندگان گرامی. و آرزوی صبر میکنم برای همه دلهای شکسته در رسای حضرت ابابدل حسین علیه السلام. شاد که از هاتون مقبول حضرت حق واقع شده باشه. درس دیگری از آشورا در سخنان حجت و اسلام و استاد دهشی رو بشمید. بسم الله الرحمن الرحیم صل الله علیکه یا عبا عبدالله دهمین درس از آشورا در دهامین روز از محرم راضی به رضای خدا بودن دوستان عبا عبدالله ازاداران مقام رضایت مقام بسیار بالایی است. فرمودن نعم القرین الرضا خوب هم نشینیه. راضی به رضای خدا بودن. امام صادق فرمود رسول خدا نسبت به گذشته هرگز پیشنهادی نداشت یا درخواستی نداشت که کاش غیر از این بود. گفت هرچه از خدا آید خوشاید. امام علی فرمود الرضا و سمرت و رضا ثمره و میوه یقینه. همه انها بزرگواران در مسیر رضای حق بودند امام حسین به ویژه ایشون فرمود الله رضانا اهل البیت رضایت خدا رضای ما اهل بیته، نس بر علا بلائه. ما بر بلای او صبر میکنیم و یوفینا اجر صابرین و خدا هم اجر صابران را به ما خواهد گفت راوی میگه هیچ مصیبت زدهی رو ندیدم مثل حسین ابن علی که هرچه از یارانش کشته میشن چهرش برفرخته بشه هرگز آثار و شکست رو در او ندیدم این یعنی راضی به رضای خداوند بودن خیلی عجیب سحنه های کربلا بگه وقتی که امام علیه السلام تیر به پیشانش خورد یه جور اظهار نظر کرد وقتی تیر به گلویش اصابت کرد به خدای خودش راز میبرد و می لا حول ولا قوت الا بالله. اون لحظه که به زمین افتاد و دیگر رمغی داشت میگفت خدایا راضیم به رضای تو. جستو کسی را ندارم لا معبود سواک. هیچ معبودی جستو نیست. یا غیاصد مستقیفین در اون لحظات آخرم میگه خدایا تو میدانی که آنها کسی را میکشند که به جز من فرزند دختر پیغمبری؟ در میانشان نیست، اما همه جا سخن از راضی به رضای الهی گفتن است، الهی رزم به قضائق، سبرن علا بلائق، امیدواریم ما هم بتوانیم در این روز آشورا و در این ایام محرم درس های لازم رو بگیریم و همانند مولا و پیشوایمان ابا عبدالله علیه السلام راضی به رضای خدا باشیم و همگان عرض کنیم صلی الله علیک و علل ارواخ اللتی حلت، اثناء والسلام عليكم ورحمة الله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 در کشورهای گوناگون چه میکنند، با ملتهای دنیا چه میکنن با فقرا چه میکنن با ثروتهای ملی کشورها چه میکنن ابعاد عظیم حرکت حسین بن علی علیه السلام شامل همه این میدان وسیع میشود